بله رحمان الرحیم <سؤال> الحمدلله رب العالمین و سعید و سلام على اشرف الانبیائی وسيد سید المسلین وصحبه آلو و اما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وقتی که میبینن خباب ازش درخواست میکنن که دست به خدا بلند بکنه و شکایت بکنه که ای خدا ما داریم عذاب و شکنج ببینیم دسته بسل اللہ علیه و سلم نارحت الان یعنی این شکنجه هر هنوز که چیزی نیست. شو رسول الله از امت‌های پیشین چیزهای دردها را گرفته. چنین می‌گوید علیه صادق (ع) خودش می‌گوید لباس حبابان ارث می‌گه فقعدا و هو محمر وجه می‌گه رسول الله (ص) و خشوین و از خشوین قرمز شده. ناراحت است. که چرا به خودش شکنجه بکنه؟ هنو که چیزی نشده می‌گه تقال لقد كان من قبلكم لا يمشط بمنشات الحديث ما دون عظم أعضمه من لحم أو عقر مجن منشار ميجوزاش ترت ترت وما تعب يشيل مجن ما يصرفه ذلك عندينا يقيم منشار جوزاش تنك النذبش بكونه والصخانشوا جشته أعصابش والرجاش حارب بكونه ببورن بمشار ميجه كما يصرفه ذلك عندينا تدب نمشو تازدينش بر بجد ويضع المنشار على مفرق رأسه فيشقه بنصفين أو بإثنين نصب میشود جلوه مردوم میوردنش و میشار میگذاشت یه دفعه اینوری این طرف پشت سرش میبستنشو جلوه مردوم میبریدن که از دین خدا برنگرد بد نمیگاش بفشان با راحتی امت پیشین چینین بودن ای امت اسلام درست میگیرید صد بکنید استقامت داشته باشید ولی ولی ولی ولی ولی تمم الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله می که یقین داشته باشید که این اسلام اون قدر گفترش بیدا خواهد کرد این قدر امن و امن خواهد اومد که یک شخص از مکه بلند میشه میره به سنها از غیر از خدا هیچ کس نمیترسه این مدت محدوده باید ما در این مدت تبت تحمل بکنیم که امر خدا امر اسلام پرچم اسلام بالا خواهد اومد ولی با استقامت این قصه ای خباب و عزیل قصه هایی که هم هست در زن در همین مساله در بحث شکنجه ها از جمله مسائلی که بحث عایشه هست که شکایات مسلمانان را را از اون وقاها ذکر میکند میگه که لا هجره اليوم کان المؤمنون يسر احدهم بدينه الى الله تعالى و الى رسوله مفافه ان يفتن عليه یعنی که مسلمانان اون روز قرار میکردن به خاطر دینشون به سی رسول الله لا بسوی پروردگار به خاطر اینکه دوچار فتین رذیل نشو نشانه میگه تفملون الله میگه بعد از خداوند اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و تسلم در مکه گفته بود عایشه الان هم همسر رسول الله در مکه میگه تفملون فقط اظهار الله الیثان و اليوم یعبد و ربه حيث شاء میگه الان اسلام بجای جای انسان به راحتی خدا من رو میفرستد یعنی الان مش خود درست خود خدا بشه یعنی اون زمان اگر یکی از اصحاب بلند میشد که جلوه تعبد سجده بکنه شکنجه و عذاب و درد دار و می دارو کتک نمی خورد شکنجه می دید اما الان ما که الان می بیایم اینجا نماز بخونید باور بکنید عزت اسلام نصرت خداونده که خداوند ما راحت کرده و راحت اومدیم اینجا به نماز ایستادیم کسی گفته نیاز نماز بکنید کسی اومده بالا سرت گفته که اگر تو فرمی کوشام شکنجهت میدم شکر و سپاس گزار خدا باشیم که خداوند این امن و امان را به خاطر عزت اسلام بهمون داد این از این کسانی هم باز اینجام شکر گزار خدا باشیم کسانی که اسلام را عزت دادند و این اسلام را به این جاه ها اگر خداوند این صحابه را متفکر نکرده بود کی می اومد این اسلام را به محاورات کنه این امنیت اسلام از کجا می اومد شکر تو سپاس گزار خدا باشیم که خداوند این شینی مهلت رو بهمون تا بیایم زنیم مساجد ببینیم و نماز بخونیم صحابه با این وجوده رنجها، با این شکنجه ها با وجود تربیت خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم می بینیم که در همون وقتی آیاتی نازل میشه که انسان تعجب میکنه که خداوند چی میخواد بکنه با این عذابش و چی میخواد بکنه با این پیامبرش آیات نازل میشه یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورسل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا آخر این سوره که در بحث قیام اللیل و در بحث نماز شب خدا من چنین خطاب قرار میده یا به رسول الله صلی اللہ علیه و یا ایون المزمه قوم اللیل الا قليل دیگه نماز شب را شب را به نماز برپا بدار بشین نماز بخون الا قليل مگر اندکی از شب برای اتراحت نصفهو اول نقص منه قليلا نصف شباني شبدرانش از وقتی که غروب میکنه خورشید حساب بکنی تا وقتی که طلوع میکنه از اون بعد از 12 ساعت یا 14 ساعت نصف 6 ساعت تا 7 نصفه او نقص منه قليلا یه کمی کارش کو خیلی کم او زیاد یا زیاتر بیا تا بر اون وقتش بیشتر او زد علیه ورته قران ترسیره و بیا برای خداوند فرآن را با تجوید و باسود برای خداوند بخان وقتی که خداوند اینچنین گجددی میکنن اینچنین پیشنهادی میکنن به رسولش میخواد بگه ای امت این محمد صلی الله علیه و سلم بهترین پیانبران بهترین بشر نیاز به این اللیل ندارن گناه ما قبل و بعدش بخشیده شده لیکن تذکر برای کی؟ چون امر بزرگی سیام چون نماز شب امر بزرگی است و خداوند میخواد تربیت بزرگانی بکند، بزرگانی را تربیت بکند، به خاطر همین بزرگی را مورد خطا قرار میده و اونم رسول الله صلی الله علیه و سلام گناهی نداره خیر البشر و سید البشر هیچ بشری بسانی ندارد خداوند بالاتر از مصطفی صلی الله علیه و سلام لیکن چون امر اسلام بزرگه، چون باعث انسان‌های بزرگی ساخته بشه، خداوند خطاب قرار میده یا ایها المزمل الليلة إلا قليلا. خطاق را برپا بدار واسیقه امر خداوند ما در این آیات اینچنین لمس میکنیم در عهد مکی یک از سورهای مکی ما اینچنین لمس میکنیم که خداوند میخواد این اشخاص را طوری بار بیاره که بسینه را سفر بکنن برای اسلام پس امت اسلام باید بدونه اگر عزت خودش را میخواد باید مثل اونها اینچنین سر را تحمل بکنه تا اینکه عزت بیا به. ولی با خوابو به دنیا که بله دنیا را پها نه او وقت مال و ثروت داشتن واسه دنیا را داشتن لیکن خدا ترک کردن جرم و جنایت است این مشکلی که آن ما داریم در امت اسلام این ذلتی خالی که ما میبینیم در عراق و فلسطین و افغانستان و هر جایی که هست همش به خاطر اینه که این اوامر الهی این دستورات الهی این عبودیتی که خدا ما از ما خواسته شده این چیزی که خدا از ما خواسته و اونم اینکه حقش رو بشناسین، حقش رو سپاس بذارید. ما خلق کردیم جن و انسان الا من جن انس را برای و انسان خلق کردم تا که نکرما جابریع فراستش. خب الان این زندگیمون مون رو نگاه بکنید. از اول صبح تا آخر صبح دیگه‌ای که طلوع خورشید طلوع میکنه، 24 ساعت، ذره ذره شب یچی بکنید 1440 روزی که میگذره. چند دقیقه چند دقیقش پرستش خدا بوده؟ اگر هدف از خلقت، اگر مقصد از این زندگی کم خدا بوده پس چرا این وقتمون اونطوری که شایسته و واثه هست، اونطوری که خدا من از ما خواسته، چرا به خدا نمیدین؟ چرا این نمازمون لذت داره؟ این طواف‌ها و این سوال رو واسه خودمون داشته باشه چرا همش دنیا، چرا همش نمیدینم مال و ثروت و نمیدونم فلان و فلان. چه از وقتمون برای خدا داریم؟ خب تا کی؟ این مسائل، این سوال‌ها هست که خدا من مطرح میکنه. و این تذکرات برای اینی که همونتو که گفتم مجاهدینی ساخته بشن تا اینکه که از اسلام دفاع بکنن اون رو امروز مثلی که زیاد صحبت کرد مسائلی هست که در درستای در درس آینده تا حد اومد از جمله این مشرکین الان بله چه کنجه دادن اینه از حضرت رسول صلی اللہ علیه وسلم و استقامت اونها دیگه چه توضعی دارن دیگه چی میخوان چی چه کار بکنن و چه نقشی بخام بازی بکنن و چه حرفای بخام بزنن مسئله هست که قهات و مکن و قطرونن دیگرم و دعوان الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و علی محمد